يا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من و ما ادراکم الحق ثمود وعاد بالقارع به نام الله که بخشاگنده و رحمت است آن روز محقق می شود روز محقق شدنی کدام است و تو چه دانی که روز تحقق یافتنی چیست؟ قوم سمود و عاد آن حادثه کوبنده را انکار کردند اما قوم سمود به خاطر نافرمانیشان هلاک شدند و اما قوم آد به وسیله بادی مرگبار نابود گشتند این تند باد مرگبار را هفت شب و هشت روز به طور مستمر برانان مسلط کرد تا عاقبت آن قوم را می دیدی که چون تنه پوسیده و تو خالی درختان نقل به زمین افتاده و مردن آیا کسی از آنها را می بینی که باقی مانده باشد؟ فرعون؟ و کسانی که قبل از او بودند و نیز اهل شهرهای ویران شده قوم لوت همه گناهکار آمدند. آنها پیامبر پروردگارشان را نافرمانی کردند. خدا نیز آنها را گرفتار عذاب سختی نمود. هنگامی که آب تویان کرد ما شما را بر برکشتی کردیم و آن را برای شما عبرتی قرار دادیم. هر چند که می دانیم، گوش گوش‌های شنابا آن را نگهداری خواهند کرد هنگامی که یک بار در سور دمیده شود زمین و کوه‌ها را از جا برکنند و به یک در هم بکوبند آن روز که قیامت واقع شود در آن روز آسمان شکافته شده سست گشته فرو می ریزد. فرشتگان بر کناره‌های آن قرار می‌گیرند، در حالی که عرش پروردگارت را هشت فرشته بالای سرشان حمل می کنند. در آن روز همه به پیشگاه خدا عرضه می در حالی که هیچ کاری از کارهای شما مخفی نمانده است و اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود از خوشحالی فریاد می نامه اعمال مرا بگیرید و بخانید من یقین داشتم که روزی به پاداش اعمالم میرسم فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوف هادانیه کلو وش ربو هنیئن بی ما او در یک زندگی خوشایندی به سر میبرد در بهشتی عالی و پرارزش که میبایش در دسترس است بخورید و بیا به پاس عمل کرد خوب گذشتتان و ما کسی که نامه اعمالش به دست چپش داده شود گوگد کاش نامه اعمالم را نداده بودند و نمیدانستم که حساب اعمالم چیست کاش فقط همان مرگ بود و دیگر هیچ اموالم نفعی به من نرساد قدرت من از کف رفته است گوگند بگیریدش و به زنجیرش کشید به جهنم روانهش کنید او را با که طولش هفتاد زرا است، بکشید. زیرا او به خداوند بزرگ ایمان نداشت و کسی را به اطعام مساکین ترغیب نمیکرد امروز در اینجا برای او هیچ دوست سمیمی وجود ندارد. غذاقیش، جز چرکخون جهنم یا نمی باشد، وظایفی که فقط گناه کاران از آن میخورند. خورند. پس قسم به آنچه که می بینید و آنچه که نمی بینید، این سخن پیامبری گرامی است و سخن هیچ شاعری نیست، چه اندک است ایمانتان و نیز سخن هیچ کاهنی نیست، چه اندک است پند پذیریتان. قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. اگر پیامبر بعضی از سخنان را به دروغ به ما نسبت می داد، او را با قدرت می گرفتیم، سپس رگ قلبش را پاره می کردیم. احدی از شما نمی توانست مانع شود. قرآن برای کسانی که حرمت خداوند را نگاه می دارند، پند است. ما به خوبی می دانیم کسانی از شما، قرآن را تکذیب میکنند قرآن ماجه حسرت اهل کفر است قرآن حق و یقین است پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و اینهو لحسرت علی الكافر و اینهو لحق و یقین سفح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم راست که خداوند بلند مرتبه بود مؤسسه پیامبر مهر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم